مرگ ابو نواس و همسرش زمانی به روزگاری مردی به نام ابو نواس زندگی میکرد که با سلطان کشورش رابطه خوبی داشت و در واقع با او ندار بود. قصر سلطان در همان شهری بود که ابو نواس خانه داشت. روزی ابو نواس گریان و نالان به تالار قصر سلطان که در اونجا بر تخمین نشست رفت و گفت آه سلطان قدر قدرت همسرم از دنیا رفت سلطان گفت خبری ناگوار است باید برایت همسری دیگر پیدا کنم و به وزیر بزرگ خبر داد تا سلطان بانو رو خبر کنه وقتی سلطان بانو به تالار اومد سلطان گفت ابو نواس بیچاره زنش را از دست داده. سلطان بانو گفت پس باید زن دیگری براش دست پا کنیم. دختری رو می‌شناسم که کاملا برا زندشه. و دستانش رو چند بار محکم به هم زد. با این علامه دوشیزه نزدش اومد و کنارش ایستاد. سلطان بانو گفت برات شوهری در نظر گرفتم. دختر پرسید چه کسی است سلطان بانو گفت ابو نواس مزلگو. دختر در پاسخ گفت زنش میشم چون ابو نواس اعتراضی نکرد ترتیب همه چیز داده شد سلطان سلطانبانو قشنگترین لباسهاش رو به عروس داد و سلطان هم لباس داماد را آماده کرد هزار سکه طلا هم به عروس داده شد و چند تخت فرش نرم هم خونش رو آراسته کرد ابو نواس همسرش رو به خونه برد اونها در کنار هم شاد و خوشبخت بودن و با پولی که سلطان به اونها داده بود با خیال راحت زندگی میکردند و اصلا به آینده و روزی که پولشون ته بکشه فکر نکردند بالاخره هرچی پول داشتن خش کردند و مجبور شدند که وسایل قشنگ و گرامبه رو یکی یکی بفروشن و سرانجام بجز یک ردا و پتویی که روی خودشون می چیزی براشون باقی نمود ابو و گفت کاملا آس و پاس شدیم و بخت از ما رو برگردونده حالا چیکار کنیم؟ جرعت هم نمیکنم که پیش سلطان برم چون حتما به نگهباناش دستور میده که بیرون بندازنم تو پیش سلطان بانو برو و خودت رو به پاهاش بنداز و گریه و زاری کن شاید دلش به حالمون بسوزه و کمک کنه زنش گفت ای وای به نظرم خیلی بهتره که خودت بری من اصلا نمیدونم که چی بگم ابو نواس گفت باشه حالا که دلت اینطور میخواد توی خونه بمون از سلطان تقاضا می‌کنم که به من اجازه شرف یابی بده به حضورش که رسیدم گریه اوزاری میکنم و میگم که زنم مرده و پولی برای کفن و دفنش ندارم با شنیدن حرفم شاید به دلش رحم بیاد و پولی بده. زنش گفت: آره، نقشه خوبیه و و ابونواس به طرف قصر سلطان به راه افتاد. سلطان در تالار باروام جایی که به امور رعایا رسیدگی میکرد نشسته بود که ابو ابونواس وارد شد. رگاه های عشق روی صورتش دیده میشد. البته اون مقداری فلفل به ماش مالیده بود و چشمهاش بد جوری سوزش داشتند و اون به سختی جوری پاهاش رو میدید. همه با دیدن حالش به فکر فرو رفتن که چه بلایی به سرش اومده. سلطان فریاد زد. عبو چه اتفاقی افتاده؟ اون گریه کنان گفت. آه سلطان بالا تبار زنم مرده سلطان گفت همه ما رفتنی هستیم اما این پاسخی نبود که ابو نواس رو به اون خوش کرده باشه اون گفت درسته سلطان اما من کفنی برای جنسش ندارم در واقع برای خاکس پاریش اصلا پول ندارم اون از این چنین حرفهایی که به سلطان زده بود به هیچ وجه احساس شرمندگی نمی کرد. سلطان رو به وزیر بزرگ کرد و گفت صد سکه به اون بدیم. سکه ها رو شمردن و به عبون و دادن. اون تعظیم کرد و در حالی که عشق همچنان از فرو می ریخت با قلبی آکنده شروع و شعف از تالار بیرون دارید. به خونه رسید زنش که با دلواپسی منتظرش بود پرسید خب چی شد پولی گرفتی یا نه ابو نواس کیسه کوچک پر رو روی زمین انداخت و گفت آره فقط صد سکه این مقدار پول با توجه به خرج و برج ما زیاد نیست و پس از مدتی ته می‌کشه این دفعه نوبت توی که پیش سلطان بانو بری رخت عذاب ببوش و به بانو بگو که شوهرت مرده و پولی برای کفن و دفنش نداری. با شنیدن آه و نالت حتما میپرسه که اون همه پول و لباس های قشنگی که روز عروسی به مداده داده کار کردیم. تو هم بگو که شوهرت بیش از مرگش پول ها رو خرش کرده و لباس ها و وسایل رو فروخته. زن چی اون گفت مو به مو انجام داد. اون جامعی پاره و فقیرانه بوشید و به قصر سلطان بانو رفت همه اون رو میشناختند چون قبلا یکی از ندیمه های سلطان بانو زبیده بود و در قصرش خدمت میکرد. پس به هیچ مشکلی به کاشانه خصوصی زبیده بانو رفت سلطان بانو با دیدنش در چنان وضع و حالی پرسید چی شده؟ چه بلایی به سرت اومده؟ زن حقق هق کنان گفت شوهرم مرده و پیش از مرگش هرچی پول داشتیم خرج کرده ما هم همه وسایل زندگیمون فروختیم و الان پول ندارم که خرج کف رو دفنش کنم زو بیده بانو گیفه پولش رو برداشت و دویست سکه در آورد و به اون داد و گفت شوهر سالهای سال وفادارانه به ما خدمت کرده حتما برایش مراسم سوگواری ای بگیر. زن پول رو گرفت و با بوسیدن پاهای سلطان بانو شاد و سرحال به خونه برگشت. اونا که پیش خودشون فکر کردن خیلی زرنگ هستن، چند ساعتی رو به شادی و خوشی گذروندند و بعد برنامه ریزی کردن که چطور پولشون رو درست خرش کنند. ابو نواز گفت، امشب که سلطان به کاشانه زبیده میره، اون حتماً به شوهرش خواهد گفت که ابو نواس مرده. سلطان پاسخ خواهد داد، شوهرش نمارده، زنش مرده. اونها با هم جر و بحث و مجادله می کنن. اما ما توی خونه خودمون شاد و سرخوش نشستیم و از زندگی و پولی که گرفتیم، کیف میکنیم. اما اگر پی به نقشمون ببرن، یک دم از دستشون آسایش نخواهیم داشت همون گونه که ابو نواس از پیش گفته بود شب که شد سلطان پس از پایان کارهای روزانه به کاشانه سلطان بانو رفت بانو زبیده با دیدن شوهرش گفت بیچاره ابو نواس دستش از دنیا کوتاه شده سلطان گفت اشتباه میکنی ابو نواس نمرده زنش مرده بانو زبیده گفت نه تویی که واقعا اشتباه میکنی زنش امروز پیشم اومد و گفت همین چند ساعت پیش شوهرش مرده و چون همه پولهاشون رو خرج کردن من مقداری پول برای کفن و دفن شوهرش به اون دادم سلطان صداش رو بالا برد و گفت حتما خواب دیدی دو روز پس از نیمروز ابونواس با چشمونی عشق و دردناک به تالار بار آم اومد. وقتی علت رو جویا شدم گفت که زنش مرده و هرچی پول داشته خرج کرده. و حتی تا وسایل منزلشون هم فروختن و دیگه پولی برای کفن و دفن زنش نداره. من هم صد سکه به اون دادم و راهیش کردم. اونا تا مدتی با هم بحث کردن و هر کدوم خودش رو حق به جانب میدونست. شب سپری شد و روز اومد. سلطان دنبال یکی از نگهبانا فرستاد و دستور داد که فوراً به خونه ابونواس نواس و ببینه خودش مرده یا زنش. از غذا ابو نواس و زنش پشت پنجری شبک دار که به خیابون دید داشت نشسته بودن. اون که نگهبان دروان اتاق سلطان رو دید از جا پرید. دربار سلطان داره میاد. اونو فرستاده تا حقیقت رو بفهمه. زود باش. توی رخت خواب دراز بکش و جم نخور، انگار که مردی. در یک آن زن دراز کش روی زمین افتاد، انگار تک چوبی خوشکه. شوهرش هم ملافه ای کتونی که روی جنازه ها می رو رویش انداخت. زن تازه دراز کشید و هم تازه ملافه رو رویش انداخته بود که در باز شد و نگهبان پا به خونه گذاشت و پرسید آیا توی این خونه اتفاقی افتاده؟ ابو نواس داد. زن بیچاره مرده. نگاش کن. جنازش اونجا افتاده. دربان به بسته که در گوشه اتاق افتاده بود نزدیک شد و جنازه که مثل چوب زنش رو زیر ملافه دید. اون گفت همه ی ما میمیریم و به قصر سلطان بازگشت. سلطان پرسید. فهمیدی کدام یکی از اونها مرده؟ دربان پاسخ داد. بله، سلطان بزرگوار، زنش مرده. زبیده بانو از خشق فریاد زد. اون به خاطر رضایت تو از ترس جونش اینطوری میگه و وزیر بزرگ رو احسار کرد تا به اقامتگاه ابو نواس برو و معلوم کنه کدومی یکی از اون دوتا مرده. زبید بانو اضافه کرد حواستو جمع کن و پی به حقیقت ببر وگرنه برات گرون تموم میشه ابو نواس وزیر بزرگ رو که به خونشون نزدیک میشد دید اون از ترس فریاد زد ای وای سلطان بانو وزیر بزرگش رو فرستاده حالا نوبت منه که بمیرم زود باش ملافه سفید رو روم بنداز اون توی رخت خواب دراز کشید و همین که فرستاده بانو پا به اتاق گذاشت نفسش رو توی سینه حبس کرد. زن گریه زاری رو سر داد. وزیر بزرگ پرسید چرا گریه میکنی زن به بستر در گوشه اتاق اشاره کرد و گفت شوهرم مرده. وزیر ملافر رو کنار زد و نگاهی به ابو نواس که مثل چوب خشک دراز کشیده بود انداخت. بعد آرام و آهسته ملافر را رو به روش کشید و به طرف قصر برافتاد. سلطان پرسید: "خب تو این بار چی فهمیدی؟" وزیر گفت: "سرورم، ابو نواس مرده." سلطان خشمگینانه گفت: اما اون همین چند ساعت قبل پیش من اومده بود. من تا تو تاوتوی این قضیه رو در نیارم ولکن نیستم. کالسکی یه تلاییم رو آماده کنید. کالیسکه ظرف پنج دقیقه در مقابل پلده های قصر آماده شد و سلطان و بانو هر دو سوار شدند. اما نواز هم دست از مرد بازی برداشت و در حالی که از پشت پنجره بیرون را نگاه میکرد چشمش به کالسکه یه سلطان افتاد اون رو به زنش کرد و گفت جون زود باش همین الانه که سلطان به اینجا بیاد حالا ما هر دو باید خودم رو به مردن بزنیم پس هر دو در گوشه اتاق دراز کشیدن و ملافهی روی خودشون کشیدن و نفسشون رو توی سینه نگه داشتن همان موقع سلطان به همراه بانوزو بیده توی پشت سرش پا به اتاق گذاشت سلطان به طرف بستر رفت و چشمش به جنازه های مثل چوب و خشک بی حرکت افتاد. سلطان با صدای بلند گفت هرکس که درباره فوت این دو نفر حقیقت رو به من میگه هزار سکه طلا به اون میدم. ابو نواز با شنیدن این حرف از جا بلند شد و در حالی که دستش رو به طرف سلطان دراز کرده بود گفت سکه ها رو به خودم. حتی اگه کسی از من نیازمندتر تر باشه، هم با سکه ها رو بده به من. سلطان قاه, قاه خنده سرداد و فریاد زد. لعنت به تو عبونو واس سگ بی چشم رو. و سلطان بانو هم دنبال حرفش رو گرفت. باید میفهمیدم که این هم یکی دیگه از حقه های کسیفته. به هر حال سلطان هزار سکه ای رو که قلاده بود، برای ابو نواز فرستاد. ما هم دلمون رو به این خوش میکنیم که او وزنش آسوت خاطر در کنار هم به زندگیشون ادامه داده باشد. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را زفر کنیم؟ جایی که پری ها و کتوله ها زندگی میکنن؟ کانال هزار